أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جباك الذين يحاربون الله ورسوله ويشعون في الأرض فسادا أن يقدموا أو يصليل أو تقطع أيديهم أرجله من خلاف أو من سو من الأرض ذلك له في سنة الدنيا وله في الآخرة عباد عظيم الَّذِينَ كَبُرَ مِن قَبْلِهِمْ تَقْدِرُ عَلَيْهِمْ فَعْلٌ مِنْ نُّورِهِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَكُرُوهُ إِلَيْهِ وَسَبَّحُوهُ الوسيلة وجاهدوا في شبيل لعلكم تطلقون طويل الله من الشيطان الرزين اشتري الله الرحمن الرحيم بيان قطفاء الدني قم عشره جريمي كران راه من دوره ميباتا وغارة جريمي كران اشادتی عجειات کنه umaله تهبیی اگر چه کردن دو مال را قتل را دیدار مال را مال یا ماهى قردن اما هر قائع کنه مال لا بها قائع کردن یا کردان دو مال بردن به دار زده میشه تن ها مال بردن در تصوی علاوقت میشه تن ها راه راه دو مالی قتیتی دی نکردن این مال زندان میشه رو راه بودن تحقیق شد لازم مال نبردن قتل نکردن این عربی تیزندان زندان امام حکومت که یل قوبل الارض یعنی تیزندان کرده میشه و دیگر آمید نید آنه تاکید کنید آنه اما آمید تاکید کنیدون جا میره سیانه کنید کنید دیگر نبا. و نبا چیزی دست رسول انما اللہ و رسوله و طریق جو دا دا. دا کی با خدا و رسول و شاید در زمین فساد را اینه کشرب شمان اگر کشرب تن امال ما نمودن یا بدار زدن اگر قتل کردن دمار بودن ایدار دادن. ایدار دادن. یا بریده بشه دسته دست و اگر تن امال ما بودن دست را تو را دادن. دست را و هر کتاو طریق ر دست راست آنو پای چپ آنرا بل بگوی دست شپ و پای راستنرا بگذاری تاکه لنگ لنگ کندو بخوردو بکرد یا اینکه زندان کرده شون در زمین امام ابو هنیفه ینفورا زندان من کرد انا زمین گم کرد یہ لطیفہ انداز انداز ہے اور دوسری تمام شروط یہ میں بیان کر رہا ہے انہیں میں دنیا دنیا در آخرت عذاب ان من قبل ان تو توبہ معربین خود تاری ہاں انهایی رجوع قبل ان تلوه کردن تامنگیردن و ترد کردن امکاردن تو پشفید آلیتا اللہ تعالیٰ فکر و رحیمه حقوق شاد از خداوند متعال در قطع اید شوارکین و یا ایک کسانی اجتماعی ایمان آور اند خدا بهتر این حکم خدا را اجرا کنی وقتی او ایله مسیلا، او کنی بطرف خدا مسیله نجات را، مسیله نجات را بطرف خدا تنگ کنی. یعنی چه؟ کتای سری مجازات کنی تا امنیت حاضر بشرد مرد خدا را وقت این آیه رو با چطور رکھ بیدی؟ کلام رو بلالمی این حالی کتا کری کمی کنن حکم خدا را اجرا کنی این وقتی را نجا شما وقتی کتا کری که ها دستقاب ریدید کتر کردید ویداز دید تدئید کردید حدود خدا را اجرا کردید هم در دنیا نجات میکنید، هم در آخرت امنیت اتنی آیت دلاغتی که سکار بکنید وحیلی نجات شما حدود الهی را ادراک کردنید حدود الهی را اجرا کردن دستور خدا را اجرا کردن یک حدود توابش از شخصاد نقل و تلاوت والا یک حکم خدا اجرا کردن یک قاتل را سما مجازات کردی. وودو در انجام کاردا ثواب بسیار بزرگدار نماز شما درنده خدا بواسطه طاعات و عبادات و اعاده و اعاده بر واسطه پھیلا به معنای ما ی توکل بی و ی تقرب الی الله عزوجل من بین طاعات و درک المحاسب اینا بوتاو دے این تفسیر صفر انجا آوردم کہ وقت کویرے و سیلہ چیه این کنت همه چه کنید این همه چیده ای نجاتش مهنه؟ را ای نجاتش مهنه؟ نا دب میگی پیش سای باوز در باوز اید کن کلام الله هر کلام را، مکرم کلام را، تباک کلام را، ماباک کلام را، نی کنید وانه کنید وقت بولی ایوه ایوه ایلکیی مامشگرده کنی پیش سایب این تفسیری از تفسیرها و از مسامعی مثل ما وقت تفسیرها شداب بشه. انسان این که آخر را نگاه کرده و هر خوف و غفلت از خدا و ما يقربكم إليه من طاعته و عبادته تان شما تمام الله هر الله و عبادت الله قال عباده طاعته اليه بطاعته و عمله بما يرضيه اگر روح حاضر کنی به طرف به الله به سبب اطاعت الله یک اطاعت الله در حساب اینکه خدا شما را میگه خود تو طریق را مجازات کنید اطاعت شما اینه که مجازات کنید چه دیگر شه به بری باش به بری به بری که ما در این کوطا طریق کو باش به بری انسان راحت زندگی میکنه هزاران هزاران نشه به ف ایک جان شرم نیتی نہ داش تب اس مال را مال این خدا فَيَجْعَلُهُ رَاعٍ إِلَى جَاهِلٍ فِي كَبِيرِهِ لَعَلَّكُمْ تَضِلُّونَ جَاهِلٌ رَاعِيُهُ اللهُ فَقَالَ اسْمَعُوا يَا قَوْمَ كَأَنَّ بَيْتَنِي جَارْدَنٌ بَذَلِي إِذْ وَلَيْنَهُ جَادُشُوهُ إِذْ مُقَاطِعِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولو روايته غيبي و ايه هم نامده که ام بيآ ما در نماز در آذار میگیم آ اللهم ربّ هذا الدّاوّت الدّامّ والصلاة القائمّ آت محمد الوسيلة والفضلة وبعث مقام محمود الذي وعده از خدا طلب نیکنی برای پیغمبر وشیله خود پیغمبر قبلا من بکتر خود پیغمبر فرمود وسیله. یک مقامی در جنت که فقط به یک انسان میرسه اون مقام را برای من طلب کنی مقام محمود را برای من طلب کنی از که طلب کنی و مقام وسیله را مقام وکیل را مقام معمود را برای پیغمبر حقی طلب کنی چی گی اللهم رب هذه دعوت التامم اے الله اختیار دار این دعوت خامه و صلات دعوت آمدن در کامیابی تو رب این دعوتی تاما و صلاح قائمین آل محمد علی انعیت بی بی محمد مقام وسیل را و فخیلت را که اتو تفسیری و انعیت بی, بی محمد مقام محمود را بشقاق قبرات اولین و آخرین در میدان محسن هزاب گرد کنمشه تا رسول الله امر خدا وده احنا خدا شفاعت اطمات و اون کلمات شفاعت اندر همون میدان محسن رسول الله ایلان اتمشه و اون کلمات شفاعت شفاعت مکنه اولی و آخری محمد صلی علیه و تاریخ مکنه بطاق محبود اچه و سیلی و محمد یکی نیا نا نا در حدیث شریح آمد مبامیت مبامیت انسان و الیک مقامات در جنت کی بھی انسان میرسه و فرمود شما برای من حرکت همین نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ از تا له شفاعت شفاعت من برای تمام انسانات که من و خیلہ و مقامات محمود برای من بعد بین اذان و اقامه اجابت دعا سرور و کائنات در مدر شما بعد از ادار این داره بهتون میشه بازیم نتیجه بگیریم. اردای جیامر من شبات میکنم برای کسی که برای من و خیلی اماکن محدود تلخ کرد. تأکید از حدیث دهیگر. تو اینجا این آیه رو به ماکان ما بادی ارتباطیه با جهاد و داستان کوتاه تریه. مادی نه حدود و اگر شما حدود و کتاب را اجرا کنید مؤمنی، شما در دنیا هم اصالت دارید، امنیت دارید، ایمان شما امیر داره، شما با کفار جهاد کنی اگر دوباره جهاد نکردی کفار بر شما غلبه کرد، ایمان را شما دریافت شما خطر در دنیا و خطر دیگر بزرگترین وشیلِ نجات شما از سفای دنیا و آخرت جماعت اطاعت خدا و رسول وشیلِ نجاة لیکن ندا کردن نبی را ولی را وشیلِ نجاة نے وشیلِ باربادی میت اللہ و رسوله و خد فرد خودا نظیم وشیلِ همه حرف ما خدا را اطاعت کنید در فریاد میسید رسول را اطاعت کنید خیردی و اطاعت وسیلی نجاته. پیس امیر گفتید که شما برایمر وکیلی بخایید و مقام معمود از که بخایید و خدا را فریاد زدن وسیلی نجاستید امیر انبیاء وقتی به مشکل گیر کردن سوری انبیاء را بشاندی پر ایچید که را فریاد میسیدن؟ واسیلی نجاته لیکن انبیاء را خدا تدار اولیاء را خدا تدار واسیلی نجات کسی اولیاء خدا و ندانی فیره و, فیر و ایساد انبیاء واسیلی نجاته قول انپنپن توحکون اللہ اللہ مومن تر در دار کی پیغمبر را اطاعت کنی پیروی کنی اتباع کنی در اعتقاد میدان برای اتباع کنی در عمل میدان برای اتباع کنی در خیرت و اخلاق پیغمبر اسلام را اتباع کنی نجات موفیق کی وسیله نجات ایمان وقت وہله الی الہ الی اتباعات حکم خدا را اجرا ہوئی یہ بات حدود ایم ها اجراب نینا با کنی نجات مارا ما در دنیا و آخرتات دلاغ و مشکلات نجات مارا مال ما محقود نیشه جان ما ما با کسی دوستان خوبی زن خوبی روی گیره تلا هرگز اونی که بر مال انسان بر تا از خیانت کردند، راه بستند، ماشین بردن بودند، بردن دختران بردن و و جایی که شمیری، این مدرس در نجات شما، ایمان شما، سال در راه خدا، نجات. بذو کرمتی لے نجات ایمان اللہ القوام نے کو کہا ربانا اننا سمعنا منادیین ندین الایمان آمنا بربکم فآمنا بذو کرمتی لے نجات در دنیا و انسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحه والصلاه وبالحق وتواصوا بالخير وسبره وسيله نجاة لكم تو هي اقل وسيله نجاة لكم ايمان وسيله نجاة لكم صلاه وسيله نجاة لكم زكاه كهرا فتقوا الى هنا وسائل النجاة وَإِلَى نَجَاةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَقْرَرْتُمُهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ خَالِقًا حَسَنًا إِنَّ هَذَا وَسِيلَةُ نَجَاتكم إِنَّهُ هُدَى الْإِلَاهِي إِنَّ هَذَا وَسِيلَةُ تاثیر الان الله تجرى حدود وسیله نجات اقامه نماز وسیله نجات اداء زکات ایمان به تحقیق به رسالت انبیاء و از تبو عنا وسیله نجات یعنی همه گانبیا را خدا به زنی دولی و خدا به زنی پیرهرا او اقوام ایر آره جنوی چشم خود بیاری منابی کنی کپیر جنوی مانی او پیر بودت جنوی مانی سات چن کنی او خودش برای خودش چی کرده کنی برای مانی کنی او خودش محبا آده جب تبون ایره وشیرہ خودی بندگان ایلہی پیش خدا وسیلی نجات تلاب میکنن، کنند نماز بخانن, می خانند، نوزم دعا میکنن، کنند، میکنن، ذکر میکنن، دید می, خونن, می خونن, نجات با نماز و بندگی. و اطاعت و بندکی، تلابت می کنند خودت تحریف اولیاء نجات شما قرآن کتاب اتباع انبیاء اولیاء انبیاء محبت محب بکشیه که آتنی تا تی الیلیه و تظهر حبهو تا تی الیلیه و تظهر حبهو اِنَّ هَذَا لَعَمْرِهِ لَبَدِيو تو یہ حال ہے محبت نہیں ہونے والا فرمان نہیں میکوے یہ واغہ بسیار چرا اگر واقعا محبت تو نسبت به خدا صادق نہیں بود امکان حق کا صادجاً عطا تو تم خدا سے عطا چرا وہ معلوم ہے غامیہت طبیعته ہے جن المحب لمن یحب موتیو محب و مطیم محبوب دی محبوب هر چی دیگه کون نار بشمت محبوب دیگه خاتیت منعنار دیگه اینا می فرمان برداری اینا اونے که کوغ نہیں کرے نہ خدای کا نام اگر وہ پار سے ماں آنها بو پر اناں سے در نہیں نما ثمن خدای در تفائل چل او میناں انا با تو حاتبرد تدیاب دم آنها را از آذان برود تدیامات ما تو کبیرمین هم آذان آبی روبه نمیشود برگمرد آنها آذان به علمات یویی تو نباده دخول در جهنم اراده میکنه انتخاب دشوار داده شده جهنم لکه نیستن آنها خارج داده جهنم عذاب عذاب حوت ریشے ہرن خان کے خارج نے مشواں برم عذاب مقیم دائم کا دا. کو رمی این کے دستش را قط افارق زن مرد باشد یا زن باشد فقط و ادیا هما قط کنی تهکام دست آنها جزام ما کسبا شام کسب کردن نکالم من الله این درس ابرتا موزیه از خدا اصرف خدا خسبری فالله ازیزال الله صاحب قدرتش عزیز غالب هر حکمی شادر کند ایسی ساگچرا ندارد حکیم اش او دانا مناسب جرم خدا مجا ساتھ مکنه دست چهار دوزرابی بورید امنیت یک میلیون انسان در ظاہد انسانی می یک میلیون انسان آسوده اگر بدون چون و چرا این حکام دست دوزدهارا می بریدن و بر سر چار راه آویزان می کردن دیگه دوزدی نمی شد ماشین با کلید بگذار اینهایی که ماشین مردم، سب مردم امنیت دارن از مال و جاند اونهایی که ماشین دارن، اونهایی که موتور دارن به هزار کفل و دوزگیر و چیز مشاهد شمید کنند میکنن یا مردمی که امروز مال داران امنیت آنها خاملا حل شده خصوصا که کسی که ازار طرفدار بدانان طرف نداران، فامیلی ندارد، اوز که بیچاره مامو مال براش عذابه تعالی میگه باید کو و اصارک تو فکتو عیدیو دستین حرکت کنی خدا نگفت سارک را که بکشی چرا دوزده از مرگ زنها از مرگ زیاد حراس ندارن حراس اینها از بریدن دست و پای اللہ تعالی میگه اینها را در دنیا قرآن نگفته سکت و ادیه هما جزا مما کسما نکالا من اللہ اونجا فرمود حلا پا ذالک لهم خزیون فی دنیا، دست و فا اینها را بودی قطع که رسوایی ها در دنیا همینه با یک فا و با یک دست یک دو زیرا میگن گفتن این همه مال این همه متا این تو ریخته چرا برنمیداری؟ نمیداری؟ میگه من این دست را دوش دارم اگر سر منم میزدن من دریغ ممی یا گیر میان گیر آمدن سر من میشه بله دست من دیگه تازنده هم رسوه الله سبحانه و تعالی قانونش بخاطر اینه که گناه نشود دوزه اگر می کشتن دوزه اگر به اصطلاح به شکنجه های سخت سختی می دادن دوزه محنه نمی لیکن دست بریدن این رسوائیه این تازمده باشد رسوائیه کمی کشم بابا فردا دیگه خبر پلانی را کشتن پس فردا پس فردا دو سال دیگه پراموشه ویگن دست بوریده تازمده هم زلیل هر جبه گرده ده سطوره چرا بوریده چکار کرده ده سطوره دیگه بوریده زلیله نیه تازمده زلیلت و دسته اوخشه دس نام غائب نمیشی مجھے ظاہر ہیں جنایت باہین انجام گریبتے ہمین ایبو بور خطا و با باپھار رابطہ و با دس جنایت کردے لحاظا دست شنب بور اپنش رحم بور امام شاطی رحم مولا و گفتہ اگر دمار سبر رحم دوزدی کردی که دست اپنش رحم بور امام بسرگوار امام ہی گرنا همین یک دست و یک فا بس دو مرتبه بگیری زندگی کنید و چوب بزنی تاکی توبه کنید و دیگر دو مرتبه چون کار نره خیلی دو ذکر با همون یک دست تو یک فا بی شد اخر گردنش بسن دیگی ماند انما جزاواللذین یحاربون اللہ بخدا در زندگی ما چند سواهی این قانون خدا بیچون چرا اضراع شد دست برویدن ولغاز ها دیگه مردم تو آسایش بودن همون دوزده های معروف که پایشون رو میخخوب کرده بودن میگه دوزده های را از دوزده های پنده ها پایشون رو با خوب کرده بودن به دیگه قدم میزنن تو خیابان و پوز میدادن قد بی حیات میشه وقتی اینسان قادر بیمکنه دیگه چی؟ لیکن دست تا ببر همون دیگه نگه نفر ده نفر دست اریده شد یک کشور امنیت خمینه الله تعالی میگه نکال من الله والله عزیز حکیم عزیز هر حکمی میکنه کسی حقیش را نداره حکیمه و میگاند که دوز از دیگه راه دست از دوزی نمی کشه چرا این همه شعر پر از دوز کپش مسلمان باور کنید ساعت و پول را اون اونجایی که حکم خدای جرامیشو کسی دست نمیزد حالا کپش مسلمان نمیگذارد. چهار دوز کپش دوزرا. را دست و پاشنه می فاد دست اینها رو می بریدند ب که چرالا می را بر دیدم می گذاشتیم تاپس برده کسی دست میزد شما هم شنید این دست. سر را وقتی پولی پول هم دست را میزدن. الان کسی مراقبت کند؟ ساعت می گذاشتند؟کییه ساعته برگاه میکرد. بله اینه یعنی این غج بین اسلام به جان انسان داده به مال مسلمان احترام داده که به هیچ چیزی اگر بر ناموسی کشی تعدی شد اونجا اللہ سبحانه و تعالی رجب را گلشته اگر بر مال مسلمان تعدی شد دست شبو برو پاش شبو برو بر جان مسلمان تعدی شد گردن بدن قبطه جوا فلکن فلکساس یا اولی الالبان چقدر خدا احترام و عزت بجان و مال مسلمان داده فمن من بعد ظلمی کسے توبه کرد توبه بعد از اینکه ظلم کرد و کرد فین الله یتوب عليه اللہ تعالی بران ان الله غفور الرحیم الله تعالی بسیار است یعنی بدوستا تلقین توبه می توبه, کنی توبه کنی دست از بکشی بر شما بازات بخشنده است و شما را می بخشد و مفید عنایت میکند و شما را در جنت می گرداند حالا اگر کسی اعتراض کند این قانون سخته چقدر این خبیث انسان های کافرها حقوق بشر حقوق بشر بگه این قانون دسکوری دوز این زای کردن حقوق بشره او لا را او جهان نمیهای بیاغل مال و جان هزاران انسان در خطر باشد بهتره یا دست یک جانی قط باشد چقدر دوزی و جنایت در امریکا و در این کشورهای ای کوفی میشه و در کشوری که حکم خدا جرا نمیشه نمیشه جنایت کم جنایت میشه از اینا، انسان با اغلی نه ما خرابیم که امنیت و آسایش میلیونها انسان در خطر باشد. هر شب دها خانه و دها ماشین به سرقت دیره. اینها بشر نیستند که حقوقشون ضایع. یک انسان خون جگر خورده زحمت کشیده کارگری کرده ساله زحمت کشیده یک ماشینی رشتواره آقا میادو را پیاده میکنه و ماشینش برمیداره میره این ظلم نیست آقای نیش ظلم نیست این بشر عقش ظاهری شک چهار دوز اگه خود این حب ایمان دو ظاهر درجه یک هستند در دنیا که دوزی میکنن و دوزی های کلان کلان میکنن به این خاطر این قانون خدا را ظلم میگرد الله سبحانه و تعالی 니가 علم تعلم مگر ای انسان تو مانی دانی که ان الله له ملک السماوات الارض به خدا اختصاص دارد بادشاہی شایی آسمانها و زمین و این مالک آسمانها و زمین او هر حق می اختیار اخترار شما قانون درست می کنید بی قانون شما احترام دارد قانون سازمان ملل احترام دارد رکنامه سازمان ملل ارزش دارد. توی که اختراع آسمان‌ها و زمین را خالقان ملكان آبدان دارد قانون او احترام ندارد. ها؟ شما مگه نمیدانی که ان الله له ملک السماوات و الارض مالک اختراع و زمین و آن کد در زمین و آسمان حسن مالکیت اینها از خداست مالک در ملک که خودش هر تصرفی میکند، کند دیگه خیری مثل بوش شاقه چرا ندارد تو چه کار هستی؟ مالک این دست مالک این انسان مگر لحنی یک گستند شریر را که همه عذیت می کند مالک آخر می گه سر دیاری دست و پایش شبه درست نیه؟ خیلی شریفه تو اللہ سبحانه و تعالی معلک هست نیسا اختیار دارد مريم اختیار دارد یعذب و منیشا هر کس را خدا عذاب میده تو چکارا هستی که اعتراض نیکنی لا عیسا و امو و یا غفر و منیشا میبخشن هر کس را تو چکارا هستی که اعتراض کنی والله ولا كل شيء قدير خلاق خدا بر هر شيء قادر است حضرت عیسی و مریم بر هر شيء قادر نیستن نه عذاب دهنده اند نه بخشنده هستند بیان زجرات برای منافقین یا, یا رسول،, اے رسول مبارک لا یحزنک الین یسارون فیل مغموم نکند شما کسانی که سرعت میجراسی دیگر در خوف نه در از دیگر این که تعداد از این یهود رسارا ایمان کردند و بعد توی کف داخل شده اللہ تعالی پیغاندر رمیگه ازید شاگردان انه لایک اشرا مغمون نباش لا یا ي... ایوها الرسول لا یخزن کالذین یسارعون فی الکف دین آئیکی مسارع در کف نیکنه انکسانه اصلا که گفتن بعض زبان آمننا بأفواههن ما ایمان آوردهیم پکت بعض زبان و گفتن ولم تومن قلوبهم دل آنها اصلا ایمان آورد و که یهودیان توی قفر می روان کار اینها در مدیس شما در کلاس درس شما در محفل شما فقط برای کشف اطلاعات بوده شما اونلل کذیب کار اینها از درس شما اینها نامدن که فیض ببرن اینها فقط عادت آمد... اینها اینه که دروغ گوشن کشن اخبار روحبان یهود چقدر دروغ میگن پکت دروغ های آنها اینها استماع میکنن سماعون لکذبن و در حقیقت مدن برای کشف اطلاع سماعون لطوم ناخری دیگه جاسوسن نیشنون برای دیگران که بله در فلان کلاس درس پیغمبر این حرفا گفته شد این حرفا گفت شد نه آمده آمدن سبتنا نکردن که هدایت بگیرن از شما این ها که استماعی خوب میکنن از ها سقن های خود احبار روحبان را خوب که دروغ میگن اونها را زید واح واح واح واح واح واح واح سماعون لکذیب او سماعون لکوم آخری قار اینها دروغ آراب میشنوان او بعض برای دروغی کی دروغی میگن یعنی به خدا یک, زمان, یک زمانی یکی تو رادیون دیون حرف زد نیم ساعت موقوس کشیده همه دروغ نیگفت همه دروغ بودن همه سوغرانیش دروغ چی نیفه همه تو عزیز رماغونه لیلکفر کردن آلا فقط دروغ سنیدن چکا خلان بنده خدا چنین کردو خلان بنده چنان کردو چنین, کردو چنان کردو چنین کردو چنین کردو کرد کردو هیچ سماون علیه هم سماون علیه هم سماون علیه کوم آخرین اینها در مجز شما برای گرید پس پیس چرا هر هرپاره میزنه لا یهزون کن بخمبرلی صلی اللہ علیه وسلم متعجب میشنن و راحت میشنن که خدایه این حتره هدایت نمیشه؟ آیت در افحام و تفہیم من پیغمبر ذاتی اللہ تعالی گفت نه اینها گوش می خوب اون دروغای عوار و رحبان را و در مزید شما فقط گوش می که به انها ابلاغ کنن اینها برای کسب فز برای کسب علم اینها به این مطلب نامده بود سر کلاس لمیاتوکا قوم آخرین، اون هستند که خود آنها پیش شما نام دادن، یعنی سران مراد بزرگ یهود نصارا به مهدی پیغمبر است نمی آمدند، غد بر بودند، و این پیش او، نه این همه شاگرد داری، همه مورید داری، نه همه داری. الله تعالی میگه سماعون لقوم آخرین اون آخرین کسانی اصلا که لم یا توکا اینها به مجلس شما تا الان اصلا نامده نا ها اگر امین شاگردان و مریدان و مقتدیان رو انجا ایزان می که برید دانه ها توسیه هم اون کام ل... اون... آخرین رو اصلاح و مراجع لم یاتو که انها شما ناظر شمال نامدن هم انجان الکلمه من بعد مواضیه کاری ناچیه تورات و تحریف تخریش نکنن مرادی مطابق مهل خود برایش بیان میکنن. بس اگه وابتغو الیه المسیلہ نداء کردن انبیاء تحریف قران است همه انبیاء خدا را نداء کردند خدا به ما دستور داده خدا را نداء کنید الله را پریاد بزنیم حالا ما میگم نه اولیار هم پریاد بزنیم همه تلاش برای این مطلب کتاب هم نوشته برای این مطلب کتابها تو فهمی نہیں یحرکون الکلمہ من بعد مواضیه تحریف کردن کلمات الهی را بعد از اینکه در جای خود بوده اند مثلا به جای رج حالا او بشر قبول نداره زنک را سنگشار کنیم مردک را سنگشار کنیم لہذا باید شلاق بزنیم اونم شلاق در ملعه نه پس جاگه حکم خدا را میخواست اجرا کنه زنکه دوزدی کرده بود آمدن پیش پیغمبر علیه صلات و السلام که شما افت کنیدیم بر کلمه بسیار تندی گفت تی فاطمه خیشی اگر فاطمه بنت محمد اگر دوستگی می کردو لکتا تو یدها حکم خدا را اجرا می کرد ای خدیثتها اگر یکی از که کی گردن تو پولدارا زنی یا مردی زنا میکرد کرد برای او راجم را اجرا نمی فقط گفتن بفتن چهرش شفیع کنی سوار خرش بکنی بگردانی و چهار تشلاغش بزنی این حکم خدا را تبدیل کردن یک جا حکم خدا نافذ یک جای تحریف. الله سبحانه و تعالی بیگنی هرکونا الکلمه من بعد موازی تحریف لفظی تحریف معنوی امروز تحریف لفظی قرآن عظیم و شان محفوظ است لیکن تحریف معنوی کتاہی ننی قرآن یکولونا میگامی وست عبال لقوم آخرین لم یعطوکا يحرفون الکلم من بعد موازیه و یقولون این بست سیب این شاگردان مریدان خود را توصیه می کنن که این اوتیتم هادا فخذوهو اگر این مطلب محرف را یعنی اگر حکم جلد را به شما محمد داد فخذوهو این حکم جلد را برداری قبول کنید و این تو, تو و اگر به شما نشد شما دادن نشدید این حکم را تو تارحیز کنید ترحیز کنید اینا رو می کردم می اگر این طور به قبول کنید و اگر دستور نداد نقبول نکنید کاغرو الله تعالی قاعده کلیه بیان میکند این کلمات الهی و يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فتنته تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ من اگر اللہ تا امکفی کے اراده کرده اللہ طلا گمرایی او را به علم اصلی خود تو پشما اپی قنبر هرگز در اختیار ندارید برای او از طرف خدا چیزی را اونی کہ خدا گمرای کرده شما هم او از گمرایی خدا از عذاب خدا هیچ چیزی را در اختیار نداری اونا کالذین لم يرد اللہ ان یطہر قلوبهم این حدیثا کسان که الله تعالی با علم ازلی و دانایی ازلی خداش کو پرشیر نفاق برای دنیا ذلت و و برای این حاضر اخرت اصحاب بدل از اون سماون اونجا قرآن ازیم و فرمود فرمون سماون للكذیب که به محظر شما آمدن و بعد در خفر برگشتن اینها کلمات شما را نمیشنون اینها عادت کردن دروغ بشنون اینها سماون للكذیب خیلی گوش می کشند ها را اکالونه لسوت حرام خیلی زیاد می خورن خیلی می خورن اکسوت لسوت من حرام این همه نظرهای غیر الله خوردن حالا اصحاب این تمام خون اینها خاطر حرام خاری از صلاحیت هدایت را گرفتے انغید حرام خاری کردن نظر غیر الله خوردن که دیگه آلان اینها صلاحیت ندارن پیغمبر علیہ السلام فرمود حرام گوشتی که با حرام خدا نجات بیده تغذیه شده از علاج و جهنم است. خدا نجات پیدا اکالون لِ صُح اللہ تعالی میگه اینها سماون لِلکذیب خیلی دروغهای اهوار و راهبان را گوش میگشن اکالون لِ و فی مبالغه هستن سماون و اکالون خیلی گوش مکشن دروغ آرا وا وا وا وا دیگر آشک میگیز چقدر دروغ فردا کی حسین روز در دنیا به خدا کسر شما مولوی بی صاحبہ بدون تأثیب بگر شما نگاه کنی چقدر دروغ میگه مرد و این دروغ آرا چقدر گوش میکشن و تمام زرائع ابلاغ فقط دروغ پرشن کنن از امریکا گرفته تا تمام دنیا همه شماعون للکذب اقالون للصدق همین رادیو ها دروغ گفته رادیو یه فردا چرا دروغ میگه رادیو پس فردا چرا دروغ میگه این بی بی سی لعنتی چرا دروغ میگه به خیلی دروغ نمیگن خدا منین اللہ تعالی میگه اینا سماعون للکذب اقالون له همه حرام خاری میکنن بی ایمانها ها نظر های غیر الله را می و مالی دیگر را این همه معلومات های جهانیان را این جهان خاران نمی خورن کنا ہوں گے این ها انسان های مستصف نہیں سن کینا خورن و کا قاره مجلل میکنن کبر ها را مجلل میکنن قانون کالون الاستخوخت هستند نظرهای غیراللار میکرند خو اکنون الله طلب فی غمبار اختیار میده اگر پیش شما آمدن برای اجرای قضیه و حل قضایا تو فهم بینهم شما اجازه دارید که پسر کنی بین آنها آوردن هم یا اصلا پسر این خصوصیات نکن. اگر برای فیصله مقضایه خود که من جمله مثلا قدیه زنای درمیان انها رخ داده بود انها ظاہران اسلام را ظاہر کردم بعد دیدن که اسلام انجا راج میکنه ضربه شلاغ میزنه انها لیتولالا راج میکنه بود بعد از احسان زنا کردن انها خیلی سر شمگرار شد. الان بر سر بوش و بلیر و شارون راجم بخاطر زنا خیلی گران نیست خیلی گران نیست؟ و رئیس جامور امریکا زنا کرد بیمان ایمان بخاطر زنا ملامتش به خاطر دروغ ملامتش کردن که من نکردم نکردن, نکردن برای زنا ملامتش نکردن چرا بوش و تمام بزرع بوش و او کلین تون همین کار را نمی کنن این ها زناتی بیه بندوباره نیستن این زنان اینها ها شتب تک این ها بیه غیرتن لحظ الرجم حکم شریعت این ها ایمان کرده بودن تو اللہ سبحانه تعالی میگه الان با تو کفر رابتن اللہ تعالی میگه سین جاؤک اگر بماظرش محمد انسا حکم بین آنهم حکم کنید بین آنها و آرز آنهم یا حیرات سنی رسلم دینا توجه نکنید خب اگر این هر تواجع لالا برای ما شرار دار اللہ تعالی میگه نا اگر شما ایراز کردید و اعلان جهاد کردید برانا فلن یا ذر رو کشیع هرگز هرگز اینا شما را ضرور نیتونن بدن و این حکم تفاقم بین هم بلکشت اگر فیصله کردی بین اینا در قضایه اینا در مسئله رجم تو فیصله کن بین آنها به عدل مطابق قانون شرعی محسنین را رد جام اگر محسن نیستند دینار است در بسالاغ بزن فکر میکنم تبرگ شریعت بکن ان الله يحب بول مقصتین الله طالدوس دارد آنها را که ادالت رضایت میکنه ادالت چی حکم حکم خدا را اجرا کردنه و این حکمت افاح کم بین آنهم بالقصه اینا الله یه بول مقصتین و کافی حکمون تعجبه. تعجبه اول تاجومن که پیو هاکی موند که چطورینهاش ما حکم قرار میده پیغمبر درباره دین، درباره تورات،, تورات، حکم الله در تورات حکم زاد محسنین را رحم کنید و ک احسان می‌دارند زرب بزنید، تومه ات ان تجو۔ تورات کتاب خدا حکم خدا بانها هست اینها ایراز میکنن بعد از این فصل های الهی که در تورات انجیل شدن بین خاطر و ما اولای که بالمؤمنین نیستن اینها یک ذره مومن نه بر قرآن ایمان دارن نه بر تورات ایمان دارن خلاصه این که اگر اینها طالب فیصله خدا میبودن فیصله خدا در خانه آنها موجود بود در خانه آنها موجود است، بلکه اینها طالب چیان حکم آسان حکم خدا در خانه اینها در تورات موجوده؟ این نه اندار تورات، این نه تورات. ما نازل سردین تورات را فیها دران تورات فضیلت اول تورات خدان هدایت هست در باره و نور هست برای ایما برای عمل در تورات هدایت است نور هدایت است برای اعتقاد نور است برای عمل یعقوب هن نبیون انبیاء الہی با تورات با حکمہ تورا فیصل کردین اون انبیائی که همتن تسلیم بودن برای خدا فیصل کردن برای چکسانی لیلذین حادو برای یہودی ها انبیاء خاص برای خدا تسلیم بودن با همین تورات در زندگی فیصل کردن برای یہودی و ربانیون اون رب پرستان هم با تورات فیشله کردن به حکم تورات پابندودن و الاحبار و احبار علماء بزرگ یهود بمستحفیدو به خاطرین که به حفاظت تنها داده شده بود کتاب تورات کتاب خدا اللہ تعالی هر نبی شاگردان خود را توفیه کردن که شما حت کتاب الهی حفاظت کنی، بخاندان را و حکم را اجرا کنی. الله تعالی میگه این تورات ملاک عمل برای نبیین بوده، برای ربانیین بوده، برای اخبار بوده. ربانیون و که کتاب الهی به حفاظت آن فدا اللہ تعالی تورات را به حفاظت علمای بنی اسرائیل داده بود. و قرآن را خودش عبادت می کند، چطور عبادت می کند. الله تعالی غالبahara برای حفظ کلام الله مجید برای امانه کلام الله مجید الله تعالی در این امه صلاحیت زیادی گذاشته و کان علیه شهدا این اخبار رهبان اقرار می کردن رقبا بودن شهدادن اینها مراقب بودن یعلمونه یبینونه تفسیر مدهری این طورات را تعلیم می بیان می کردن بی خاطر اللہ تعالی فلا گفت فلاح تخشون ناش او اخبار روحبال شما نترخید از مردم و بما انزل الله فا هم الكافرون هر کسی حکم نکنت با ان کتاب آئی که خدا نازل کرده یعنی به حکام شرعی پابا نباشا انها کافران دینی دین آیا دیشتر دکھ شده در همی ایچا انجا فرمود ومن لم یحکم بما انزل اللہ فا هم الكافرون بی خاطر بزرگان نوشتے کردن که لم یحکم بمعنی اعتقاد بمانزل اللہ هرکا ندارد او کافر در روحی شکی دیس حرک اعتقاد بمانزل اللہ را ندارد او کافره من لم یحکم اے من لم یحک يح... یا سکر بمانزل اللہ اعتقاد ندارد فاولائک فا هم الکافرون و کتبنا بیان اکساس از سورات ما در تورات فرض کرده بودیم بر سر توراتی ها ما نوشته بودیم بر سر اینها در تورات این مطلب را که از نفس به نفس نفس در مقابل نفس همین حکم که در تورات بوده در قرآن هم همین حکمه نفس در مقابل نفس قرصه شواهد ونان چشم در مقابل چشم کنده شود که چشم کسی را کند چشم او رو دار حالا کیفیت درآوردن چطوره؟ اگه چشمور مورد زده نور کرده، چشمور میره بعد بینور نکنی. حالا پوکانه وسیله چه صورتی بینور نکنی. ولی امروز حالا سخت نیست، دکتر میگه اون راجعه اصلی غات کن و تمام. حالا اینو بلعیم، و الانفو بیلانف بینی بینی برابر بینی غات شد. چون بینی کسی غات کرد، بینی شغات کن. و جب آرده بودم برنام مردم خوزو گوش میکنم بینی رو میبرم ناحق بینی کسی رو بینی شبه برید زد شاخوی خنجری تیغی بینی کسی رو بینی شبه برید ول ازون و بل ازن گوش در برابر گوش هم غب شود و سن نبی سن دندان در برابر دندان هم کنده شود زد دندان کسی شکست دندان شبه کنید امروز که اینا قرآتان دندان رایت همون دندان هر کسی را کنده این دندان, دانن. دانن. دندان ها شناساییه میدانن خاریان میدانن همون دندانشه بکنید الله تعالی مینه من پرچ کرده بودم برای انها در تورات که نفس در برابر نفس همین حکمم هم در قرآن هست خواه ها. والجروح اکساس زخمه ها برابری میخواه حالا غیر دیگر زخمی زده دی. حالا منطوری زخمی بر وارد میکنی اگر اندازه او زخم معلوم نمیشه حاکین خصوصا برای او جریمه کنه، میکنه دست کسی را کبود کرده حالا ما چه اندازه بزنیم که دست او چه اندازه کبود بشه یه این معلوم نیست. برای این کبودی ها شریعت جریمه بذاشت اگر عدالت میشه که خوب عدالت انگشت کسی را بوریده چطور بورید از اینجا بوریده خوب انگشت از اینجا بورید لیکن اگر شکسته چطورش بشکنی عدالت چطور کنی او به چه اندازه شکسته و ما به چه اندازه بشکنی غذا اینجا حکومت عدله اینجا دیگه باید ورا را جریمه کنن اگر قصاص والجروح و زخمان برابری میخواهن ذات قصاصن حالا در فقه گفتن که بعضی هستن که عدالت آنجا برقرار نمیشه جریمه میبزارن و تمام زخمها جریمه دارن در کتابها نمیشته اینقدر زخم کردین اینقدر زخم این اینقدر زخم کردین جریمه خوب این صاحبان ها غنبینی شه بریده دستش که بریده به اصطلاح دندان شکنده حالا اگر این اغا ببخشه تو بینی من من بینی تو را نمیبونم خب این بخشش به اختیاری خودست تو گوشه من من گوشه تو را نمیبونم به خاطر خدا تو را میبخشم اگر او بخشید خب ما شاء الله برای او هم بخششه شد فمن تصدک بیهی کسی تصدک کرد بی این چیزها فهو کفارت الله برای او کفاره می شوند و من لم يحكم ممان صل الله و اولئک هم الصالحون اناای که فیصله نکنند به منزل الله اونها ظالمان اعتقاد دارن فیصله نکنند امروز مسلمان ها و حکام مسلمانان همه ظالمان اگر اعتقاد به حق خدا ندارن که کافرن و اگر عمل نمیکنه حکم خدا را اجرا نمیکنه قوید این حدود و قصاص را حاکم ها باید اجرا کنند اونها ای که حاکمن با حکم خدا را اجرا نمی کنن با حکم خدا فیصله نمی کنن اینها ظالمه خلاصا ما تورات را نازل کردیم و تا انجیل همه انبیاء و احبار و ربانیون بین تورات حکم کردن و تو حکم تورات هم بود آخر من پشت سر این انبیاء و این ربانی اونو بر نقش کدم این انبیاء و احبار آوردم ایساب نو مریم را کفی نب در کفا پشت سر این انبیاء علیه و سلام بر نقش کدم این انبیاء من ایساب نو مریم را آوردم ایسا ابن مریمی که تصدیق کرد، تصدیق کنین بود برائے آن کتاب آج سی چب ندیس ایسا ابن مریم بودن تورات را وما بینیس ایسا ابن مریم اناد کردن انجیل را ان دور انجیلیں در این انجیلیں ہدایت بود برائے اقائدو نور بود برائی آمال و تصفیق کنند بود این انجیل آن کتاب آئی رکھ کبرد انجیل بودن یعنی تورات را و این انجیل شرط تا سر ہدایتی بود برای اخلاق و اقاعد و آمال و نشیحتی بود للمتقین برای متقین یا انزل خدا در انجیل نازل و اللہ هم فاسکن یعنی خارج از خدا کتاب آسمانی هم دکی بکتاب آسمانی پیش بیشه، حرکر رئیس و نبیشه. قانون اساسی مؤمن کتاب الله باید به با کتاب الهی فیصله هر چه فیصله به مانزل الله نہ کر فولائک هم الفاسقون فولائک هم الظالمون فولائک هم القافرون آیه ی کی چھ نتی یعنی ان کے اعتقاد به مانزل الله نہ عارف کی دارو کھو شکیں اعتقاد دارد و اگران نمی کند او ظالم است او, او, او فاشک است او بخاطر که از بوش میتر ترسه خدا را ازوان نمی کند او درجه یک او خارج از فرمان خدا خب حالا دور تورات انجیل گذاشت حالا دور قرآن است و انزلنا الیک الكتاب بالحق ما نازل کردیم به جانمی شمایه بر کتاب را به این دور قرآن است مصدقا لما بین یده این کتاب تصفیق میکنه اون کتاب حیرت قبل از بودن از کتاب حاشمانی تورات انجیل زبور و غیره را و مهمنن علیه این قرآن محافظه تورات و انجیل است حالاً ار حکمی در تورات و در انجیل خلاف قرآن باشد قرآن را رد بکنه چون قرآن تایب میکنه تورات و انجیل را هرچی که خلاف قرآن در تورات و انجیل باشد قرآن رد میکنه این قرآن مهمن و نگابانست بر کتاب آئیل آئی شما اے پیغمبر فشل کنید بینین یهودی بما انزل الله هنچه خدا نازل کرده و اتباع نکنی خواهشاتین این قانون قرآن را قبول نداران قانون خود را مطرمی کنن بیبین خواهشاتان ها را اتباع نکنید در حالی که شما اعراض کنید از آن کتاب و حقیقی پیش شما آمدست اما جاک جا من الحق متعلق معرضت هست ایلا تتبه احواء روم در حالک شمای راز کنید اما جاک من الحق از آنچه کامده پیش شماس حق خلاص لکل این جال نمین کم شرعتان و برای هر امتی لکل این تنویش از مذاق لکل امت و منهاجان شرعتان یک شریعتی منحاج و شرعتن هر دو به بمانای راه هم به اعتبار ظهور اونها شرعتن و به اعتبار رفتن منحاجن را هم شما هم که برید تو این راه هذیت نمیشت فرقش این غزیت به اعتبار ظهور و یک شرعت است یک راهب بزرگ و برای رفتن منهاج ولو شاء الله وتعال قومتن واحد اگر خدا میخواست خواست قرار میداد همه شما را یک امت موحد لیکن مشیت الهی چنین رافته لذا اختلاف پیدا کرد فلسفه اختلاف شرایع ولکه لیبلوا کم فی ما آتکم، لکن الله شمار امت را میکند در آن حکمای کبیسما داده است. در تورات حکمی دیگر داده بود برای بعضی مسائل. در انجیل حکمی دیگر داده بود برای بعضی مسائل. در قرآن حکمی دیگر داد. الله کالا با این حکمای متفاوت، متفاوت جزیی. اینها ها لحاظ امتحان ہے الهیا فستبتل خیرات شما بطرف خیرات تا دیگر شبغت بگیرید اختلاف چونسی را بگزاری کنار و تو خیرات تا دیگر شبغت بگیرید اینالله مرزیوکم جمعه فقط به طرف خدا بازگشت همه شماش او خبر میکنه شما را به آنکه که بودی شما در آنها اختلاف کردید بعد از ودودی خد حک خام خش خا اختلاف کردید و آن کم اما دستور دادیم به شما کفسل کنید الله فسل کنید و انتباک کنید خاشات و از اینها که درپتن نهند آدم شمارا از با شما ما انزل الله ایلک در حال از ما انزل الله فهمتوالله اگر از فیصله قرآن اینا اعراض کردن به فیصله قرآن غانه نشدنی یهودی و نصرانی تو بدان این مطلب را شما غم نکنید و بدانید این مطلب را شما بدانید این مطلب را که اراده کرده الله تعالی که برسانت دیانها به سبب بعض گناه عذاب اگر این ها از حکم قرآن ایراز کردم پس بدانی که در علم خدا این هم معصرماند فعلا بدان انا ما الله، اللہ یسیبهم به بعض ذنوبیم حذاب بداند آنها را بمقابل بعض گناه و بشیاری افین مردم البته امروز هم فاشکن یعنی از حکم خدا خارجن افا حکم الجاهلیتی ابغون آیا این حکم جایلیت و نادانی را طلب می کنن که در نادانی و جایلی و احمقی چه حکمی کرده همونو پنام نیخان حالان که ما احسان و من اللہ حکم لقومی و قنون چه جی کسی جیب آتر فرس خدا اگر نظر حکم را قومی کی غیم دارند خوب اقنون خُكم ترک موالات با کاتری مومنین کفار یهود نصرت از دین خدا زیر بار دین خدا نرفتن و نمیروند نه در تو نه در دور تورات نه در دور انجیل و نه در دور فرقان پس با این دشمنان خدا که در ادوار متفاوت از خدای طاعت کردن، شما مومن حق داری با اینها موالات داشته باشید محبت و دوستی و یاری داشته باشید اینها که نه در دور تورات از خدای طاعت کرده و نه در دور انجیل و نه در دور فرقان، شما با دوستان خدا حق نداری که موالات داشته باشید یا ایوہ اللذین آمنو اما زیادیم گفتیم دور تورا دور انجیل دور قرآن در این ادوار انہاں خدا اطاعت نہ دشمنان خدا سا شما هم دیبیلی با اینها محبت نکنید. یا ایوہ اللذین آمنو لا تتخذو یهود و نسارا اولیاء و مومنین اتخاذ نکنید یهود و نسارا را دوست دوستان خود قرار ندهید. یا این حاکم خود نکنید متولی امور خود نکنید اینجا اولیاء به معنی دوست محبت مرادودت با یهود نصارا نداشت باست چرا بعض هم اولیاء و بعض یهود نصارا بغن امروز 1400 و, و سال دارت می کسرک می بینیم یهود راسه و این نصارای لئین چقدر دارا برای منافع این غاسبان درجه یک فعالیت برای مکرات اللہ تعالیٰ میگه شما یهود و نصارا یار قرار ندهی دوس قرار ندهی چرا باز هم اولیاء و باز اینا با در برابر شما تلحی متحدان حالان که قبل از و قبل از تشریف آوری پیغمبر اسلام، یهود نصره را با قوت رد می کنند، نصره یهود را با هم رقیب بودند. می خواست پیغمبر فرمود: آل کفر ملت واحد. اگر کسی نهار یار قرار آتشی. الله تعالی و ما جت و منکم. هر کسی که دوست کرار دادی یهود و نصاره راسما مومنین فإنه منهم او از هماناس تن کسی کبا یهود و نصاره دست داد دست رفیقی اللہ تعالی میگه او از همو یهود و نصاره و اللہ تعالی اغرامیزی و مبالغامیزی می کنه من تعجب می کنم که بعضی‌ها میگن نه این تشدید تشدیدن خدا اینطور گفته یعنی تقنوفا خدا اینطور گفته خدا اغرا نمیزی میکنه این اغرا میزی و مبالغه بازی انکار ما انسان های ترسو هست الله تعالی روی حدیث فرق می ده هر کایار یهود و نصارا سوتنه همون و یهود و نصارا شرا یار نشد خدا به مقصد نمیرسانه کم های ظالم کا یا ظالما لذا بخاطر این اعماق دوستی مسکین ظالما خدا به مقصد نمیرسانه فهم این سخن را نمی کنند یا ظالما با یهودنا سارا یار نشد کو اون چرا با یهودنا سارا یار نشد می گم ما با یهود و نصارا یارین می ترسین که مارا می زنین این که مارا بلایی بسر نیارد مار رفتی یار شفید اللہ تعالی می نمی فطر فتر اللذی رفی قلوبی مرضون تو می بینی اے پیغمبر آن آرک در دل شون مرضاست مرض در دل آن خاص مرض نفاکست مرض شک و تردیب دین اسلام این با سرعت تمام می روان توی این یهود و نصارا سن منافقین وقتی آن آره ملامت میکنیم نی میگن نقش آن کسیبنا دائره ما میترسین که بیما یک مصیبتی میرسا کم از کم جائپائیو داشتا باشین روز مصیبت بریمون اونجا سلام علیکیم بکنین اللہ تعالی جواب میده فاس اللہ ان یاتی وعده خدا اس کی بیانت فتخو پی روزی مسلمین را یا یک حکمی از جانب خدا که پرددری منافقیم کند پش گردن این منافقا بر آنچه که در دل دارن نادم چیزی در دل دارن؟ منافق با یهود و نصاره مراقضه و گفت این خاطر که مسلمان ها مغلوب بشن وقت روزی که مسلمان ها مغلوب میشن یهود و نصاره غلبه می کند خبا چیز مال میشه کنی خاطر ما دیدیم که با یهود و نصاراتی مراویده کردن که مسلمان ها مغلوش را اونها به کرسی چار سبایی میشست پس امید است یعنی وعد خداست که بیارا فتره یا حکم پرده دیری با از بارگاه خداش این امر منندی یعنی حکم پرده دیری آنها را پس میگردن اینا بر آن چکل مخیمی کردن در دل آن چیز را مخیمی کردن مغلوبیت مسلمین با اینها ها نادم نیشن و میگوین نانایی که ایمان آوردن هاولایی اللذین افتم این منافقین قسم میخوردن سما با شما مسلمان آئی از مجلس و از مسجد و, و, و نبی حرکت میکردن میرهتم با یهود و رسواره اللہ تعالی همین چیز را میگه میگوین می کیمان که ایمان آوردن آیا این منافع‌ها اون کسانی نبودند که کسی می‌خوردم به خدا، کسی بسیار مؤکد جهاد ايمانیم یعنی یامینان جهاد. یک کسی بسیار محد، مؤكد کسی می‌خوردم به خدا، کسی بسیار مؤکد که اونها لمعكم این هواش ما هستن. حبت اعمالهم از این خاطر نابود شده همه اعمال آنها پس نی نه خاسر خاسر ابدیه چون نفاق داشتن ایمان نداشتند لذا اعمال صالحی که انجام دادن صدقاتی آوردن دادن یا در هادی یا در مسیحی همه این اعمال بیزار خیر اینها نابوده حبت اعمالهم تمام قرآن اینها نابودا لعصا قسطا خاصر باخر